بعد از آنی که در همین عملیاتی که امروز شما تو این منطقه منطقه دارخوبین اینجا منطقه درگیری بسیار تعیین کننده عملیات الائمه بود که سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری یک دیگر دستور امام رو برنامهریزی کردند، ترراهی کردند، تو همین منطقه توانستند دشمن رو به عقب بنشانند و اون ای که دشمن به خاطر پشتیبانی های ها و خارجی ها و اروپایی ها به دست آورد این روحیه رو در هم بکوبند و بشکنند و محاصره آبادان رو از بین ببرن. این تو همین عملیات این منطقه اتفاق افتاد. بعد از این عملیات، عملیات طریق القدس، بعد از این عملیات، عملیات فتح المبین. بعد عملیات الابیت المقدس، این عملیات های پشت سرهم که رزمندگان عزیز ما، جوانان فداکار ما، در قالب ارتش در قالب سپاه در قالب بسیج و نیروهای مردمی در قالب مجموعه های اشاعری در قالب حتی شهربانی و ژاندارمری اون روز و کمیته های اون روز می تو این میدان جنگ و این فداکاری ها رو انجام میدادن این عملیات می توانست جنگ را به خاتمه برساند و پایان بدهد اما جبهه دشمن نظام اسلامی یعنی همین اروپایی ها و دولت های اروپایی و دولت آمریکا نمی گذاشتن طرف مقابل تشویق می کردن. امکانات جدیدی به او میدادند او رو به برنده شدن در این جنگ امیدوار میکردن لذا جنگ هشت سال طول کشید هشت سال جنگ شوخی نیست جنگ های بزرگ و معروف دنیا در دوران های نزدیک به ما چهار سال و پنج سال و شش سال و این ها طول کشیده هشت سال جنگ اون هم در این منطقه وسیع از شمال تا جنوب از منطقه شمال غربی کشور تا این انتهای جنوب این درگیری ها وجود داشت قصدشون این بود که کاری کنند که نظام اسلامی احساس کنه که قادر بر مقابله با این دشمنان نیست میخواستن کاری کنند. که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک مجموعه ضعیف و ناتوان معرفی کنند خدای متعال دست قدرت خود را نشون داد و دهان دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان پرچم برافراشته اسلام رو خرد کرد با مشت فولادین سنت الهی و بینی اونها را به خاک مالید و نشان داد که نظام اسلامی چون متکیه به ایمانهای مردم و به عواطف مردم است در مقابل همه قدرت های مادی جهان هم میتواند از خود دفاع کند هم میتواند طرف مقابل را وادار به اعتراف به عجز کند به عجز خودشون اعتراف کردن قبول کردند که در مقابل مشت قاطع گروندگان به اسلام و مؤمنان به وعده های الهی اینها نمیتوانند توانند کنند تبلیغاتشون خنسا شد سعی می کردن به ما، ما مردم ایران، ما مؤمنین به آیات کریمه الهی به ما بباورانند که شما نمی در مقابل قدرت های مادی دنیا بایستید می این رو به ما بباورانند